دو چیز محال عقل است، خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم. غذا دگر نشود بر هزار نالب و آه به کفر یا به شکایت براید از دهنی، فرشته ای که وکیل است بر خزاین باد، چه خورد که بمیرد چراغ پیر زنی؟